شما نگاه کنید که جوان ها، وقتی میگم یعنی چه؟ الان در زمان حسین نسل دوم انقلاب آمده رو کار. سال شست هجویه. سالی که نسل عمومی جامعه های اسلامی نسل دوم هست. نسلی که در دوره انقلاب نبودن، <تص> و اون عصف و و اون افتخارات و اون پیروزی ها و ایمان ها و عشق ها از زبان این اصحاب باید میشنیدند. و جوشش اون عشق در قلب جوانشون تپش داره و اندیششون و ایمانشون و امیدشون به این مردان پرورده ی انقلابه و وقتی میبینند اینها با این صورت در منجلاب پلیدی هر روز یکیشون سقوط میکنه چه یعصی چه نومیدی و چه بی ایمانی و چه ای نسبت به اون که اسمش اسلامه در خودشان احساس میکنه اینا که نسل دیروزن، نسل اصل پیغمبر اصل انقلاب نسل دوم در میانشان جوشش ها و افتیان ها و تلاش های پخته و ناپخته برای مقاومت و برای مبارزه علیه این نظام جاهلیت دروغین جدیدی که روی کار آمده گوشه و کنار جریان داره مظهر و رهبر جوانهای نسل دوم انقلاب حجرب ابن علیه هوجر علی در زمان پیغمبر یک بچه بوده زمان علی جوان شده و وارد معرکه زمان حسن یک سیاستمداره و به شدت به امام حسن میتازه و بهش حمله میکنه که چرا سهره امضا کردی و حتی احانت میکنه یک مرد خروشان جوشان و اسیانی ولی امام حسن در یک سخن پنهانی که با او میگه در مدینه او رو قانع میکنه و حتی امیدوار که اینجا تاها حسین در این مذاکره چون حج آدمی نیست که به سادگی و با چند تا نصیحت عقیدش برگرده در اینجا تا در این ملاقات با امام حسن با حج و همچنین ملاقات سلیمان بن سرد خوزایی با امام حسن که بعد هر دو راضی و خاموش و تسلیم صلح از خانه امام حسن میان بیرون در صورت که اول معترض بودن به شدت میگه که در اینجا امام حسن پس از اینکه که میکنه که هر گونه مقاومت علنی دیگه بیفایده است و جز اطلاف هیچ ثمری نداره پایه یک تشکیلات مخفی را میگذاره تشکیلات مخفی که مبارزه را پنهانی با حکومت ادامه میده و بعد همین تشکیلاتی که در دوره امامت تا آخرین امام شیعی در سراسر کشورهای اسلامی شبکههای گسترده پیدا میکنه حجر با یارانش جوانهای شورنگیزی مثل علی ابن هاتم و امثال ها هستند طاقت نمی در برابر این همه زشتی که هر روز قدرتمند تر و قصیتر به جای حق و عد و اسلام داره بر مردم حکومت میکنه مقاومت میکنن. مقاومت ها فراوانتر و گستردهتر و گستاختر میشه. تا اینکه به هر حال با اون فریبی که شاید غالبا بدانید یه جا این مظاهر اصیانگر جوانان نسل دوم علیه بنیومیه دستگیر میشن و در مرجل از در شام سربوریده میشن و قتل آم حالا امام حسین آمده پایگاه پایگاه مرکزی قدرت انقلابی به کلی از دست رفته اصحاب مقاومتگر مقاومت و وفادار کشته شدن و خاموش اصحاب پاک دامنی که به فروش نمی روند خلوت امن و فراغت عبادت را بر دردسر حق و باطل ترجیح دادند و مردم رها کردند و اصحاب نامآور پیامبر در تواف کاخ سبز معاویه در آخر بیت المال دارند و نسل جوان و نسل دوم در کوشش خودش و در های خودش علیه بنی امیه شکست را تجربه کرده و قدرت حاکم با شمشیر یا با پول یا با تزویر همه را آرام کرده و خفه و ساکت دوتا دوتا بیماری و سرطان تازه هم به جان اندیشه ها افتاده که غالبا مورخین بهش اشاره نمی کنن. و این دوتا از هر قتل آمی و از هر کشتار و اعدامی بیشتر جامعه مسلمان رو فلج کرد زیرا کشتن و اعدام و نابود کردن فکر جامعه رو نهزت رو جان میده فلج نمیکنه این دو سرطان بود که در عمق اندیشه ها فرو رفت و خورد یکی اینها هر دو روشن فکران و دانشمندان و متفکرین عقید ساز وابسته به دستگاه زور بودن یک دسته مرجعه هستند ظاهرا اینها مفسر قرآن هست. متکلم اسلام هست. عالم دین جماعتند این پست ندارن، مقام ندارن، جلادی نمیکنند. در گوشه های مدرسه ها و حوزه های درس و بحث مشغول تحصیل و تعلیم هن. مرجعه. مرجعه یا یعنی مرجعه اینه که هر کسی پلید و پاک هر که هر جنایتی کرده و هر تلیدی و بدی امید به رحمت و بخشایش خداوندی باید داشته باشه رجا باید داشته باشه و چون هر جنایت کاری را خداوند قفار قفور رحیم رحمان میبخشد بر تو انسان گناهکار حرامه که به چنین آدمهایی دوستنام بدی و بد بگی و مبارزه کنی بونگهی وقتی تو جنایتکار کار محکوم میکنی و وقتی تو گروهی را میگویی خائن فتم کار و گروهی را میگویی مظلوم خدمتکار تو ادعای خدایی کرده ای زیرا احکم الحاکمین خداوند و روز حکم دادن و قضاوت کردن و ازیابی کردن نسبت به اعمال اشخاص روز واپسین و حساب است و در برابر ترازوی عدل است و تو در این دنیا میخوای به حساب خاطی و خائن برسی؟ نه بر ما است که بین خائن و خادم حکم نکنیم بر ماست که جنایتکار محکوم نکنیم و بر ماست که در برابر گروهی و گروهی دیگر جبهه نگیریم همه بگذاریم صبر کنیم به خداوند واگذار کنیم این ضرور مسئله که سر کارشا باید آخرت این مثلا مرجعه است اومده تو این رجا بیماری رجا سرطان مرجعه نسل دوم اسلامی ره که آموزش درست مکتبی نداشتند اسلام را و قرآن را از زبان محمد و علی و اصحاب مهاجر و انصار نگرفته بودند. از زبان این دست دومی های مزدور اندیش فروش و عقید فروش باید بگیرند به شدت با تبلیغات مداول مرجعه که به وسیله دستگاه ها تقویت می و منتشر میشد مسموم شد. و مسلمانهای مسمم مسئول قاطعی که هر لحظه در برابر امر به معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت میکردند یک آدمهای های و پروسعت مشربی شدند که همه خدا و شیطان هر دو در وسعت مشربشون میگنجید و به هم کاری هم نداشتند دوم جبریون بودن که باز در همینجا جا وجود آمد اولین مکتب تفسیری که با وجود آمد در اول بنی امیه مرجعه بوده که از قرآن چنین وسیله‌ای درست کردن برای فلش کردن و نابود کردن هر اندیشه انتقادی چه برستم جهاز یکی هم جبریون بودن که اولین فلسفه‌ای است که در زمان بنی امیه با فلسفه بوجود وجود آمد به اسم فلسفه جبر الهی ببینین در چهره مقدس چه اصطلاحاتی چه پلیدی ها نهفته جبر الهی به این معناست که در قرآن گفته شده است که خداوند مشیت بالغش هر چه در جهان رخ میدهد مشیت بالغش است کرده هر کس هر عملی میکنه عملی است که به اراده خداوند کرده و هر کس در هر وضعی در هر جایگاهی در هر انتخابی در هر عملی پلید یا پاک جان یا غیر جانی قربانی یا جلاد همه همه تجلی مشیت خداونده و اراده خداوند اگر کسی بردست و کسی خواجه و اگر کسی م... حکومت داره و کسی نداره اینا همه دست خداست خداست که حکومت میده خداست که میگیره خداست که میکشه خداست که زنده میکنه و خداست که عزت میده و خداست که ذلت میده توجیه جبر چقدر منطقم درسته چقدر هم فریبند است و در نسل مؤمن و معتقد و متعصد و خداپرست اون است توجیه قرآنی جبر همراه با روایاتی که پشت سر هم ماشین های روایت ساز اتوماتیک الکترانیک ابو هریره که چار هزار حدیث یک جا می سازه. که اگه پیغمبر شب و روز میخواست حدیث بگه باید هزار سال عمر می داشت. اینان پس شدند در اندیشه مؤمنین معتقد تسلیم اراده خداوند اثر فلش کننده ای که اگر بنی امیه روی کار است خدا روی کارشون آورده و اگر علی شکست خورده خدا اراده کرده که او شکست بخوره و اگر بد این یا اون خوبه و اگر خوب باید از بین بره و بد باید رو کاره طبق حکمت بالغه است که بر ما روشن نیست و به اراده شخص اوست که در اختیار ما نیست و بنابراین اعتراض به حکومتی، به قدرتی، به قصاوتی، به جنایت یا قارتی بالمعال انتقاد و اعتراض به مشیت الهی و قدرت الهی و اراده و خاص الهی در اینجا چه کسی جرأت انتقاد داره به بنی امیه به معاویه چه کسی بنابراین سال شست همه چیز از دست رفته سال شست همه چیز از دست رفته نهضتی که نیم قرن پیش به وجود آمد همه آورده ها و موفقیت هاش پامال شده کتابی که پیام آورده بر سر نیزه های بنی امیه بالا رفته فرهنگ و عقیدهی که اسلام به جهاد و تلاش خودش در دلها و ذهنها نشنده وسیله توجیه حکومت عموی شده همه مسجدها پایگاه شرک و ظلم و فریب و استعمار خلق شده همه شمشیرهای جهاد در اختیار جلادان قرار گرفته همه پولهای ذکات و قنیمت به بیت المال کاخ سب سرازیر میشه و زبان رسمی که از حقیقت توحید، پیغمبر، سنت، قرآن، وحی سخن میگویند همه این زبانها در اختیار معاویه و رزیم معاویه همه ائمه جماعت، قضاعت مفسرین قارئین قرآن علما و متکلمین زمان اونها یا کشته شدن یا خاموش و خفه مشغول ریاضتند و به مثل موشها خزیدن و یا رادیو ترانزیستوری های دستگاه شام شدن پایگاه خود محمد یک زبان نداره یک مهراب نداره یک منبر نداره یک گوشه در تمام این سرزمین بزرگی که روم و ایران و عرب یک قلم روه بزرگ اوست یک گوشه از آن یکی از افراد وابسته به خانواده خود پیغمبر و وابسته به اون نسل وفادار به انقلاب نیست. همه رنج های مهاجرین و عطا بر باد رفته و گنج بادآورده برای کاخ ماویه شده انقلابیون گذشته یا در سحرای دور ربزه مردند یا در چمنزارهای ملجل عزرا کشته شدند و نسل دوم اونهایی که جنبش و کوششی کردند قتل عام شدند و دیگران به بدبینی فلسفی جبر یا تسلیم بردوار مرجعه گرفتار شدن و یا هر گونه تلاشی را برای تغییر وضع بی میبینند زیرا هر گونه تلاشی برای نگهبانی اسلام و استقرار حقیقت و مبارزه با این جاهلیتی که روزافزون نیرو میگیرد گیود تجربهش شکست بوده بنابراین الان سال شهر زمان یک پارچه در اختیار قدرت قاسب ارزشها ها یک پارچه به وسیله دستگاه تعیین میشه عقیده ها افکار به وسیله دستگاه های عقیده ساز و فکر ساز. معین میشه و مغزها شستشو میشه و به وسیله موادی که خودشون به نام دین میسازن پر میشه ایمانها یا دگرگون میشه یا خریده میشه یا فلج میشه و اگر هیچ کدام نشد شمشیر و حسین حالا آمده آمده در برابر این قدرتی که هم افکار دستشه هم دین دستشه هم قرآن دستشه هم قدرت دستشه هم ذر و هم پوست و هم تبلیغات و هم همه صلاح و بیت و المال و همه وراثت پیغمبر دستشه دستش هیچ چیز نداره خالی چه کار میتونه بکنه؟ میتونه حسین هم مانند زاهدان به گوشه خلوت عبادت بخزد و به نام این که فرزند فاطمه است و علی و نواده عزیز پیغمبر و بنابراین بهشت تضمین شده است براش خاموش باشه او اطمینانی این که مؤمنین ما دارن او نداره مسئول او میتونه مسئولیت و جهاد را برای رسیدن به تقرب خداوند با کتاب دعا که سادهتر عوض کنه نمیتونه او وقت کتاب دعا هنوز چاپ نشده بود دو کار میتونه بکنه یکی اینکه بگه نه چون نمیتوانم مبارزه سیاسی بابنی امیه بکنم زیرا نیرو می ندارم پس بنشینم و به مبارزه علمی و فکری بپردازم چنین کاری رو حسین نمیتونه بکنه اگر امام صادق در قرنش خودش در نسل ششم در سالهای صد و بیست این کار میکنه میکنه به خاطر این که دوره بنی عباسه اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباسه از یک طرف فلسفه یونان رو رندم به طرف اندیشه های مردم مسلمان از یک طرف تصوف هند و ایران باستان رو رندم به طرف دلهای مردم مسلمان و بعد روشن مسلمان در عصر بنی عباس به جای این اینکه حساسیت سیاسی داشته باشند به حق و باطل به قصب و غیر قصب بیندیشند و به اینکه بنی امیه چرا آمد و چرا علی رفت بیندیشند و به اینکه زمام مردم باید دست چه کسانی باشه و دست چه کسانی هست بیندیشند به هفت شهر عشق میاندیشیدند یا به رابطه هیولای اولا با این هیولاهای بعدی که خود باشن به این مشکلات ره. و به اون ماده اساسی و اصلی که خدا از اون ماده جهان رو خلق کرد میاندیشیدن و به این مسائل میاندیشیدن که توی قرآن اسرار فلسفی یا عرفانی عجیب و خلقهی کش بکنن که اگر کشفن بکنن و درم می دو پول نمی که درم نمی آمد. برای کار دیگه ایست بنابراین در چنین اصلی مبارزه فکری یک ضرورت بود به خصوص برای کسی که امکان مبارزه سیاسی براش نیست که خودش گفت اگر هفته نفر می داشتم قیام می کردم. اما در زمان امام حسین چنین خطری وجود نداره سال ش هجریه هنوز از فلسفه های خبر نیست از تصوف شرقی خبر نیست از تا... علم کلام پیچیده پیچید خبری نیست از علومی که مسخ کرد واقعیت و حقیقت اسلام خبری نیست اسلام هنوز دست نخورده متنش هست خاطرش هست، آشناییش در ذهن اغلب هست منوز هست معاویه از خدا میخواد که امام حسین بیاد در خود مسجد دمشق بنشینه و فقه درس بده، تفسیر درس بده، معارف اسلامی درس بده، توحید درس بده تفسیر و یکایی که آیات و قرآن سیره پیغمبر هرچی درش میخواد درس بده درست هم هست همش هم از برژه هم تأمینه فقط به اون کارا کار نداشته باشه ولی اون میدانه که ارزش هر کاری در جامعه به اندازه است که دشمن از اون کار ضرر میبینه بکنه پس باید قیام بکنه قیام مسلحانه بکنه قیام مسلحانه توانستن میخواهد توانستن میخواهد و حسین نمیتواند در یکی از کتابهای که اخیرا منتشر شده که خب خیلی هم مشهور شده چون ادعی زیادی بهش حمله کردن و عرضیش این کتاب هم بیشتر به همون حملههایی است که بهش کردن و من خودم به سهم خودم اون تنها کتابی دیدم که در ایران فضلا اونها نوشتن که تحقیقی اصنادره همه آورده مخالف و موافق آراء مختلف ره کرده تزیه تحلیل کرده نقد کرده و حتی گستاخی رد و اثبات داشته گستاخی اینکه که نظر تازه علمی بده داشته اینها و مطالعه‌ای وسیع داشته و اسناد بسیار فراوانی را مطالعه کرده و به یک کار تحقیقی علمی پرداخته این ارزش هایی که من برای این کتاب قائلم و برای نویسنده‌اش اما اختلاف سلیقه‌ای که با نویسنده دارم سر اینه که این یک تز عمومی یک تز عمومی و او اینه که بسیاری معتقدند که حسین از مدینه پاشو به عنوان اینکه قیام سیاسی یا نظامی علیه حکومت و علیه رژیم بکنه و بعد رژیم رو چپ بکنه و بعد حق خودش را و حق مردم را با به دست گرفتن زمام جامعه احقاق بکنه این یک ایداله اما اید آلیست که متأسفانه واقعیت های خارجی با سازگار نیست. بعضی به بی این نویسنده یا این صاحب نظرانی که اینجور نظریه دارن ایران میگرد که مگه حسین یک سیاست مداره که پاشه بره قیام کنه برای حکومت. این ایران آقا اینه. پس علیب پس چی بود؟ برای چی می پس؟ امام حسن برای چی می سیاست مداری نیست مسئله اینه که جنایت بر سرنوشت مردم حکوم حاکمه و کسی که مسئول سرنوشت مردمه باید تا وقتی دستش میرسه قصر از بین ببره و حق احقاق کنه و حکومت رو به دست بگیره این حق امامه اما حرف من اینه که امام میبایست در برابر حکومت قاصب قیام مسلحانه سیاسی بکنه و جاهلیت مختدر چیره بردار برداره به زور و حق احیا کنه و زمام مردم رو به دست بگیره اما این امکان رو حسین در این سال نداره. دلیلی که میارم بعضی از اون آیون بخصوص خصوص نویسنده این کتاب اینه که پایگاه کوفه یک پایگاه به شدت طرفدار حسین و خانواده حسین و خانواده پیغمبر و علی درست پشت کوفه به ایرانه که اونجا سمپاتی داره و سمپاتیزانهای خانواده علی توی تسنن و تسنن هست خب مسلمه من میگم که پایگاه کوفه یک پارچه در اختیار امام حسین ایر فرض برای میگذارم که کوفه به مسلم هم خیانت نمیکن. فرض برای میگذارم که کوفه به قدری نیرومند بود که اگر امام حسین خودش به کوفه میرسند میتوانست بزرگترین پایگاه قدرت اسلامی بشه و یک حکومت آزاد اسلامی بره برای امام حسین به وجود بیاره و حتی دمشق نابود کنه. اینم قبول. اینم قبول. اما حرکت امام حسین، حرکت قیام کننده نظامی سیاسی نبود. اون هم نبه عنوانه که این عیب برای امام حسین، نه وظیفه است، اما امکانات براش نیست. چه جور امکانات نیست که اگر حسین خودش به کوفه میرسون و تو میگی کوفه پایگاهی میبود که میتوانست دمشق از بین ببره و قدرت حکومت و حکومت اسلامی رو به دست امام حسین بسپاره چرا پس قیامش قیامه؟ سیاسی و نظامی علیه رژیم اموی نباشه به خاطر اینه که حسین به کوفه کار ندارن حسین از مدینه پا میشه میاد به مکه بعد که دعوت کوفه میرسه دعوت های مردم کوفه که پاشو بیا اینجا ما به رهبری تو ایمان داریم و قدرت به دست تو میز پاریم و در برابر قصد و ظلم استیم و از تو دفاع میکنیم در مدینه اعلام میکنه که من میروم به طرف بعد میاد به مکه 600-700 کیلومتر راه میاد به مکه از مکه جلوه همه جمعیت حاجی که از سراسر اکناف جهان اسلامی آمدن اعلام میکنه که من به طرف مرگ می روم، اعلام میکنه که تلموت علی ولد آدم مختل قلادت علی جید الفتا اونجا میگه مرگ این مردی که قیام سیاسی مخالف بکنه، اینجا سخن نمیگه. یه ما میکشیم میزنیم پیروز میشویم و ستم رو نابود میکنیم پیامش اینه: مرگ برای فرزند آدم زیبا همچون گردن بندی بر گردن دختری زیبا و جوان زینت مرگ مرگ. و بعد از مکه رام یفته به طرف مرز آقا ممکن است یک مرد به علم غیب و اینا کار ندارن یک مرد سیاسی یک مرد معمولی در قلب قدرت بنی امیه زندگی میکنه توی دست حکومت در وسط قلمرو حکومت مرکزی یک پایگاه شورشی خارجی بر حکومت مرکزی شورش کرده از او دعوت میکنه که به طرف ما بیا تا قیام کنیم علیه دو حکومت مرکزی بعد مرد هم اعلام میکنه که بسیار خوب من میام علنا اعلام میکنه و بعد هم زنش ره و بچه ره و خانوادش ره و بچه های برادرش ره و همه زنان و بعد مردانه خاندانش ره همه ره را مندازه با یک کاروان رسمی آشکار اعلام شده طبیعی از شهری که در اختیار دشمنه به حکومت مرکزی خارج میشه و بعد 700 کیلومتر راه آره در قلم حکومت مرکزی به همین شکل حرکت میکنه و بعد به مکه میاد که همه نمایندگان کشورهای اسلامی و نقطهای اسلامی که تابع حکومت شامن در اونجا جمعن اونجا باز اعلام میکنه و بعد از مرکز عربستان را میفته به طرف عراق و تا کوفه این مطمئن نیست که خب نمیگذارنش مسلم نمیگذارنش اگر یک نفری در خارج از یک مرزی بخواد بره برای که اونجا مبارزه کنه این مبارزه سیاسی کنه این چجوری میره خورشی به اونجا میرسونه؟ مسلمان باید اعلام نکنه، دعوت و آگاه نکنه دیگران ره، کسی متوجه نشه، پنهانی فرار کنه به اون طرف، این این چیز طبیعیه. اگر آمد رسما به دولت گفت که من میخوام برم به خارج از مرز، اونجایی که با تو مخالفن و قدرت مخالفت، به شورش در آمده من هم درخواست کردن برای که رهبری اونجا رو به دست بگیرم تقاضای گذرنامه دارم خب معلوم نمیدن و معلومی که دستگیر میکنن و معلومه که تعقیب میکنن و حسین اعلام میکنه به حکومت و به قدرت و به ارتش حکومت و به همه نیروی حاکم و به همه جامعه اسلامی که من برخواستم به هجرت دست درد حرکت کردن اگر حسین ناگهان صبح که پا می شدند مدینه ای ها می دیدن حسین نیست و بعد خودش رو به قبائل میرسان مثل که پیغمبر مهاجرت کرد از مکه به مدینه اون هم مهاجرت مخفیانه کرده بود از مدینه به کوفه و بعد از مدتی ناگهان حکومت او را در کوفه می معلوم بود که حسین به عنوان قیام علیه رژیم حاکم دست به کار زده اما با شکل کاروانی که حرکت میده نشان میده که حسین برای کار دیگری حرکت کرده چه کاری چه کاری اصلی است که اصلی است که اندیشه ها فلج شخصیت ها فروخت شدن وفاداران تنها هستند، پارسایان گوشگیر جوانان یا معیوز یا فروخت شده یا منحرف و گذشتگان و بزرگان گذشته یا شهید شده یا خاموش و خفه شده و یا فروخته شده و اصلی است که در میان توده هیچ آوایی و ندایی دیگر بلند نیست قلم‌هار چکافتن زبان‌هار بریدن، لب‌هار دوختن و همه پایگاه های حقیقت ره بر سر وفادارانش ویران کردند و بعد و بعد حسین میبینه که اگر خاموش بمانه تمام اسلام به صورت قدرت حکومتی در میاد مثل قدرت حکومت مغل مثل قدرت حکومت سلوکیه جانشینان اسکندر یا جانشینان چنگیز که بعد خود قدرت که از بین رفت و خلافت و ارتش که متلاشی شد و نابود شد دیگه هیچی نمیمانه و به کلی همه چیز از بین رفته بنابراین حسین در دو بایستن گرفتار شده. نه میتونه خاموش بمانه که وقت از دست میره داره همه چیز شسته میشه و زدوده در درون زین ها و دل ها و مدرسه ها و مسجد ها و جامعه ها همه چیز و همچنین همه چیز داره در زیر گام های قدرت و فریب تمکین میکنه و کرده و زمان کاملا در اختیار سکوت و خفقان و تسلیمه نمیتونه خاموش بمانه از طرفی نمیتوانه بجنگه که نیرو نداره و در قبضه قدرت زورمند حاکمه نمیتواند فریاد کند نمیتواند خاموش بماند نمیتواند تسلیم باشه نمیتواند حمله کنه. که صلاح ندارد لحه نداره یک راه در این حالت برای این مرد که تنها مونده با دستهای خالی اما بار سنگین همه این مسئولیت ها بر دوش تنهای اوست تنها مونده از اون قدرت جدش و قدرت پدرش و برادرش و از ثمره اون همه جهادها به او هیچ نرسیده جز افتخار و جز رنج و جز مسئولیت سنگینتر تنها مونده در برابر نیرومندترین امپراتوری وحشی جهان که در زیباترین و فریبندترین جامعه تقدس و تقوا و توحید بر آریکه سلطنت و قدرت سواره تنها مونده در اینجا در اینجا که تنها انسانی که تنهاست نیز در این مکتب مسئول در این مکتب انسان تنها نیز در برابر قدرت قدرت مطلق و تعیین کننده سرنوشت ها مسئوله و هر کس بیشتر آگاهه بیشتر مسئوله و از او آگاه تر کیست و اما مسئولیتش را مسئولیت از بین رفتن حقیقت از بین رفتن حق مردم نابود شدن همه ارزش ها، نابود شدن خاطبه اون انقلاب از بین رفتن اون پیام وسیله شدن عزیزترین ترین فرهنگ و ایمان مردم به دست پلیدترین ترین دشمنان مردم و باز گسنگی ها و بردگی ها و شلاغ ها و دربند کشیدن ها و تفاخر های نجادی و اشرافیت جدید و جاهلیت جدید و در برابر پاسدار اون انقلاب بزرگ خدایی یک نفر تنها و با دستهای خالی و با هیچ امکان و در قلب دشمن گرفتار و در دستهای خزم اسیر و نمیتواند خاموش بماند و نمیتواند بجنگد. نمی تواند خاموش بماند که همه این مسئولیت ها منتظر این است که ببیند بی این مرد چه می کند و نمی تواند بزنگد که فلاح ندارد راه منحصر به فردی که داره این است که مرگ خویش را به عنوان سلاح بردارد برای جهاد و شهادت یعنی این شهادت یعنی این و در چنین جای یک که تسفانه من نمیتونم من رو کنم نوشتم اون میخونه در چنین سکوتی که گفتم همه چیز از بین رفته علی رفته حسن رفته ابوذر رفته عمار رفته نسل دوم حجر رفته و یارانش قتل عام شده و افکار و اندیشه ها بی یأس و ظلمت و نابودی و انحراف دوچار شده در چنین ظلمت که دیگه سکوت بر همه جا حکومت میکنه دیگه دارها برچیده و خونها شستند و ابو ها و ابو درداهایی که خیلی در انقلاب پیغمبر و در اون عصب درخشان رجزخانی ها میکردند اونها همه رسوا شدن و به بیعت کوف و ظلم در آمدن و اون شب در مزار آباد شهر بیتپش وای جغدی هم نمی آید بگوش در چنین یک بزر. در مزار آباد شهر بیتپش وای جغدی هم نمی آید گوش دردمندان بیخروش و بیفغان خشمناکان بیفقان بی, بی و بیخروش خروش اون اصحاب های آسمون کوب قوی وا شدند و گونگون رسوا شدند این احساس یکی نسل دوم داشت سال شهر مشتهای آسمان کوب قوی وا شدند و گونگون رسوا شدند یا نهان سیلی زنان یا آشکار کاسه پست گدائی ها شدند خشدین ما بی شرف ها مندهی. در اینجا که همه چیز داره از دست میره همه چیز منتظره یک تنه یک سرده که تجسمه همه ارزش است که داره نابود میشه و همه ایدئال است که بیاور و بی حامی مونده و تجسم و مظهر عقیده و است که بهترین پاسدارانش به خدمت دشمن رفتند همه در انتظار اینه که یک مرد چه می کند گاه در تاریخ اینجور پیش میاد. و اما ناگهان جرقی در ظلمت انفجاری در سکوت سیمای تابناک شهیدی که زنده بر خاک گام برمی دارد. از اعماق سیاهی ها از انبوه تباهی ها چهره روشن و نیرومند یک امید در شبه ظلمانی یا باز از خانه خاموش و قمزده فاطمه باز اینجا هم از همین خانه معجزه میشه باز از خانه خاموش و قمزده فاطمه این خانه کوچکی که از همه تاریخ بزرگتر است مردی بیرون آمده خشمگین و مسمم و در هیئتی که گویی بر سر همه قصرهای قصاوت و پایگاه های قدرت آهنگ یورش دارد و گویی کوهی که آتش فشانی بیتاب را در دل خود به بند کشیده و یا است که خداوند بر این قوم عاد فرو فرستاده و اکنون به آغاز میکند. مردی از خانه پاتمه بیرون آمده مدینه را مینگرد پایگاه ظلم و جور شده و مسجد پیامبر را و مکه ابراهیم را و کعبه به بند نمرود کشیده را و اسلام را و پیام محمد را و کاخ سبز دمشق را و باز گرسنگان را و باز در بند کشیدگان را و مردی از خانه فاطمه بیرون آمده بار سنگین همه این مسئولیت ها دوش او سنگینی می کند او وارث رنج بزرگ انسان هست. تنها وارث آدم تنها وارث ابراهیم و تنها وارث محمد و مردی تنها و مردی تنها اما نه دوشادوش او زنی نیز از خانه فاطمه بیرون آمدن گام به گام او نیمی از بار سنگین رسالت برادر را او بردوش دارد مردی از خانه فاطمه بیرون آمده تنها و بیکس، با دست های خالی یک تنه بر روزگار وحشت و ظلمت و قصاوت و آهن یورش برده جز مرگ سلاحی ندارد اما او جز مرگ سلاحی ندارد اما او فرزند خانواده است که هنر خوب مردن را در مکتب حیات خوب آموخته